بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وسكنه فسيح جناته باب حسن الخلق حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن القاسم بن أبي برزة قال سمعت عطاء الكيخاراني سمعت عطاء الكيخاراني عن أم الدرداء رضي الله عنها عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال ما من شيء في الميزان من حسن الخلق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلات السلام على شرف الانبياء وسيد المسلمين وآله وصحبه اجمعين اما بعد سدون الزهومين باب از ابواب صحيح هذا مفرد من بخاري قفتي من بخاري رحمه الله وسكن في جناته باب حسن الخلق اخلاق نيک اخلاق دروس فشراف ديوي سويو 8 هرمين حدیث حديث ابو الدردار رضي الله عنه كيمديه رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمودن ما من شيء في الميزان اثقل من حسن الخلق ما من شيء چیزی نیست که مثل خوش رفتاری در ترازوی در ترازو روز قیامت سنگینی بکنه ما من شيء في الميزان اثقل سنگین تر از خوش و خوشرفتاری شما عملی نداره در روز قیامت اهمیت چیه اهمیت اخلاق اینه نه اینکه تو اخلاق درست باشه نماز نخونی بهشت نه مثل فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم حج عرفه حج عرفات یعنی مزلفه نباید بری این یعنی طواف افاضه رو نباید انجام بدی جمرات رو نباید سنگ بزنی اینا یعنی نیست نه یکی از مهمترین ارکان حج چی است یکی از مهمترین اعمالی که مرتبط با ایمان چیه اون چیزی که سبب ایمانت زیاد بشه اون چیزی که میشه که ترازوی اعمال روز قیامت، ترازوی نیکیهات، سنگین تر بشه، اخلاق نیکه، رفتار درست. گفته میشه حسن خلق و گفته میشه حسن خلق. هر دو تا هم با ضمه لام داریم، خلق و هم با سکونش، خلق. خلق انسانه و خوی انسانه، طبیعت و سرشت انسانه. سرشت پاکت، سرشت درسته، سرشت که منبعش قلبته، این قلب وقتی که صاف باشه این قلب وقتی که سفید باشه و نباشه میشه خوشبین میشی خوشدل بدبینی نیستی به این و اون دوبال نیستی که بری به این, این پاپوش بسازی و به اون صفحه درست بکنی از کسی انتقام بگیری مثلا بفرض با کسی خصومت و کدورت داری بیای بر حرف بزنی نه قلبت صافه پاکه بعد بهت وید کردی که وسیه بهش میدی میگی که حتما داشته حتما نتونسته، خیلی جا هست. اشخاصی که روز نمیدن اشخاصی که حسن زن ندارن قلبشون سیاهه، تحملشون واقعا سخته تحملشون واقعا سخته نمیشه تحملشون کرد یعنی تنها به این نیست که به دشنام بده و بداخلاقی تنها به دشنام داده یا ناسزا گفتن اینا نیست یعنی شخص حالا باید دشنام بده یا ناسزا بگه که بشه بداخلاق نه گاهی همون منفی بازیش همون ازنش، برداشت همون ازنش طرف مثلا عنوان مسال الان تماس گرفته من سر کلاسم نراحته مثلا که چرا من جوابش ندادم چرا جوابم نداد؟ این متکبره این مغروره این خودشو رو دیده میرالا این ور اون بر غیبتت میکنه به دروس رفیه زنگ زدم جوابم نداد فلانه این این اونطوره این اینطوریه در صورتی که خب تو عوض داری من اینجا نشستم سر کلاسم سر درسم نمیتونم خوب جوابش بدم نمیتونه آدم این, این اشخاص را تحمل بکنه این نش... یکی از نشانه های بدرفتاریه این تعامل بده تعامل اشتباس در تعاملمون درست باشیم یکی از اون دروسی ها خویتو طبیعتت سر اشته درستش کن با چی درستش بکنیم یکی از اون چیزها ارکان اون خوش رفتاری فعفو فعفعلهم عفو کن ببخش بدی دیدی من بدی کردم جواب فلانی اون رو ندادم بدی از من سعزده. به من عذری نداشتم خب تو ببخش نمیتونی پانسمانش بکنی قلبت سعی کن بر زبانت دعا براش جاری بکنی تا اون کینه کدرت درمان بشه انسان گاهی یه چیزی میبینی از برادرش از اون کینه از اون بغز از اون سو زن من خودم برای خودم پیش میاد برای اینکه در قلبم چیزی نیاد تو سجده دعا میکنم برای طرف یا بیادم میاد میاددار میکنم براش الله مخفلله الله محده الله محفن درسته که اون ندیده درسته که اون نمیشنبه بین تو و الله فرشته هم داره میشنبه اون فرشته میگه ولکه آمین برای تو هم همین الله استجابت بکنه من دای افدار دارم میکنم اون همین خودش اثر خودش رو خواهد گذاشت چه اینکه استجابت بشه چه در اینکه اون کینه و بغزه از بین بره بین تو اون یکی از راهای درمانه قلب یکی از راه های کسب اخلاق نیک اخلاق نیک جایی سرشت طبیعت الله شخص را اینچینی خوش اخلاق خوش رفتار آفریده یا یک جبی برایش مهیا ساخته که این اونچینی پدر خوب مادر خوبی داشته باشه که خوش اخلاق خوش برخورد باشه و جایی نه جبر یاری نمی‌کرده که این اینچینی خوش اخلاق خوش برخورد باشه خودش از وقت خودش گذاشته برای کسب خوش اخلاقی مثل شما الان اینجا نشستی استعامل رسول الله صلی وسلم شوخیش نشست و برخواستش توازعش دارید یاد میگیرید دارید اون سرش که روش تربیت شدید دارید اصلاح میکنید دارید حسن اخلاق را یاد میگیرید کسبه و در مقابلش شما پاداش دارید حسن اخلاق تنها عفت نیست جای صبره حلم بردباریه تحمل بردبار بار سنگینی رو بر دوش تحمل میگنیم برادر نیاز را میری میشه نه که بارش میشه یارش میشه بعضی ها از همه چیز گلایه دارن از همه چیز گلایه کردن یکی از اسباب نفرت اسباب اخلاق بده بد رفتاری که سبب میشه که ما از این چنین اشخاص پرهیز بکنیم گلایه کردن سرزنش کردن و خوبت و برادری را از گایی میبره پیش من نیمدی چرا اومدی بندرها چرا پیش من جا نه تو اصلا رو به چش نداشتی که نیمدی مزد داشتم با خانواده بودم نه قابل ندونستی هر هرچی میخوای بگی یه چیزی روش میذاره از حسن رفتار کم تبرقعیه از بد اخلاقی پر تبرقعیه همش تبرقعی داره بیام پیشش دستوالشو بگیرن بلندش بکنن و سر و بذارن از مکارم اخلاق از اخلاق نیک و درست سخاوتمندیه از مالت، حالا چه برای اون مهمون، چه برای اون دوست و رفیق حزینه بکنی از اون مالت جایی با یک لبخنده، خورسندی تو خوشحالید با اون لبخندت به اون طرف براشن. این اینم سخاوتمندی یا سخاوتمندی تنها به اون مالی نیست که حزینه بکنی برای پذیرایی از مهمونت و که اون زبان نیکت، اون چهره درخشانت، یک پذیرایی از اون مهمون میدونی که دلش خوشه که تو اومدی پیشش. این سنگینه در ترازی روز قیامت همون لبخند و همون پذیرایی همون سخن نیگید جایی شفقت مهربانیه، دلسوزیه، درکه، جایی درکه وقتی که این درک و شفقت از قلب ما نسبت برادرمون برداشته میشه میشیم بد اخلاق، بد ارفتار، فقیره، مسکینه، یتیمه بلاخره برادر ایمانیمونه، خوهر ایمانیمونه ازت ایمان. درخواستی میکنه، تقاضی میکنه، چون تواند نمیرسه دلیل بر این نیست که نهرش بکنی پرخاش بکنی باهاش نه شرعتو من کرده خودش دلشکسته هست بعد تو میای با اون اخلاق بدت بدتر او رو میرنجونی دلشکسته ترش میکنی اجازه نداری باید دل بسوزونی باید دل سوز باشی باید هم دل و هم درد مردم باشی هم درد برادرت باشی این اساس اخلاقه درکش بکنی از مکارم اخلاق گذشت کردن و بخشش از وقته و بیشترین شخصی که حق دارن بگردن ما که از وقت خودمون با اونها ببخشیم پدر و مادره هم صحبت اونها باشیم بریشینی باشو حرف بزنیم من معمولا مادرم سعی میکنم که بعد از هر نماز میبینمش اگر یک نماز نرفتم فورا نماز میگیره. این نماز نبودی نیومدی چی شد یک روز اتدا تا نشنید دلو پس میشه تو وظیفته وخفض الله باجد حذلي من الرحمه در مقابل اونها رحیم باشی وقتی که با پدر و مادرت رحم شدی بالات فرض شد از وقت خودت بخشیدی برای ها دوست رفیق هم همین طور میشه اونها مسخر میشن برات که بالهاشو برات فرش بکنن بچه های خودت هم همین طور کما تو دین و تو دان اونطوری که تعامل میکنی باها تعامل میشه الله توفیق میده بهت که دیگرانم این چنین احترامی که تو داری به حق والدینت به تو هم احترام بگذارن محترم میشی رسول الله صلی الله علیه و آله اویس قرهنی رو ندیده بود بعد ازش شنیده بود ولی او رو دوست داشت او را مدح کرد ستایش کرد چه چی چیز در اویس قرهنی سمدح و ستایشش بود که رسول صلی الله علیه و آله اون رو ستود بر والدین احسان و خوبی به مادرش الله به انسان رفعت میده با اون حسن رفتار و اخلاقش و سبب میشه که روز قیامت رو بیاد و در کف ترازوی اعمال نیکش سنگینی پیدا بکنه همون که خوش رفتار و خوش اخلاق محبوب درگاه الهی و الله او را دوست داره و ترازی اعمال سنگین میکنه همونطور هم کسی که بد رفتار در تضاد با اون الله بغضش داره اگر اون الله دوست داره محبوب درگاه الهی بد رفتار الله او الله بغضش رو داره چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلام میفرماین الله اللهَ تَعَالَى لَا یبغضُ الفاحشَ کسی که بد دهنه بد رفتاره الله بغضش رو داره در حدیثی دیگر رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرمائی و این صاحب حسن الخلقی لیبلغ به درجه صاحب الصوم و صلا با خوش رفتاری خوش برخوردی تو مقام اون کسی را پیدا میکنی که شبها را به نمازی ساده و روزها را به روزه سپری میکنه بین درجه درجه براتبه میرشت یعنی با اون رفتار نیکت همون با رفتار درست با مادرت و پدرت الله درجه اون شخص را به میده که هر شب از وقتت گذاشتن ده دقیقه 5 دقیقه برای مادرت بداره برای دوستت رفیقت در حدیث دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرما این المؤمن لا یدرک بحسن خلقه درجه صائم القائم درجه شخصی که روز روزاست است و شب به تهجد الله به اون کسی که روش با افتاره اون چهن درجه ای را میده و در روایت عبدالله عبد الله سوال میشه از حسن اخلاق چی میگه هو بسل وجه و بذل المعروف و کف الاذى شرافتاری چهره اینی که راست مردم ببینن به مردم خوبی بکنیم. بس عزتش و از آزارشون دست بکشین این خوش رفتاریه خوش برخوردین کسی رو نارنجون با ناخلاقیت حرف و سخنت دل مردم رو خوش کن دل همسر دل بچت خوش کن با یک لب خندی با یک حرف خوبی این سر موفقیت در زندگیه یک مسئله اعتقادی هست این حدیثه اونم این که اعمال انسان وزن میشن رسول الله صلی الله علیه و آله چیزی نیست که ترازوی سنگینی بکنه مثل اخلاق نیک اخلاق شد چی یک چیزی که قابل وزنه در صورتی که رفتار یک لبخنده اون لبخندت میشن یک عملی وزدار در ترازی اعمالت که با اون ترازی خوبی ها سنگینی بکنه جایی پرونده اعماله که وزن میشه جایی خود اشخاصی که وزن میشن و جایی هم اعمال انسان چنان در درس‌های گذشته این مسئله رو ما توضیح در مسئله رحم. برخلاف اون عقره ها که میان نه عمال عرزن و عرز قابل وزن نیست و ماهیتی نداره و فلان نه نا. نص حدیث رسول الله صلی الله علیه و salam که اخلاق انسان وزن میشه و سنگینی میکنه در ترازوی نیکی انسان همین طورم خواهد بود قال المؤلف رحمه الله حدثنا محمد بن کثیر قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن ابي وائل عن مسروق عن عبد الله ابن عمر رضی الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول خياركم أحاسنكم اخلاقا 25 حديث حديث عبد الله بن عمرو بن معاص رضي الله عنهما قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا اصل فحش زيادي ربي خروج عن الحد اصل فحش چیزی فاحشه یعنی از حد متجاوز شده رسول الله صلی الله علیه وسلم شخص فحشگری نبود یعنی چی؟ یعنی رسول الله صلی الله علیه سخن زشت و فاحش رو به زبان نمیوبود بددهن نبود لم یکن نبی صلی الله علیه وسلم ولا متفحش متفحش کسی که بسیار نافتزا میگه بسیار بددهانه نه حرف زشتی را میزد نه حرف نابسند حرف بدیر به زبان نمیولد رسول الله صلی الله علیه و سلم بد دهان و بد سخن نبود سخنش زیبا بود سخنش سنجیده بود سخنش کم بود اندک بود ولی با معنا بود سخن شیرین بود ناسزاگویی سبب رنجش میشه سبب دلشکستگی میشه سبب آزردگی میشه سبب جدایی میشه سبب بغض میشه کدرت میشه و قل عبادی يقول التي احسن الله جل وعلا میگه ای اسرا بندگان من بگو که سخنان بسیار نیک بگن، خوبترین رو بگن، احسن یعنی خوبترین. نگفت خوب، حسن. گفت احسن سخنان بسیار خوب رو بگن یا سخن یا خوبترین سخن رو بگن. چرا؟ ان نزق ینزغ هم چون شیطان نزغاتی میاره؟ با اون سخن خوب شاید شیطان سوء استفاده بکنه. ولی خوبترین رو نه. بس تو مکلفی که خوبترین سخن رو بگی. چه با همسر، چه با فرزند، چه با دوست چه با والدینت. تو باید خوبترین باشی چرا رسول الله خوبترین بود در اخلاق رفتارش هیچ وقت بد سخن نمیگفت هیچ وقت بد نبود بد رفتار نبود ناسزار نمیگفت و اینجنین میفرمود صلی الله علیه و سلم خياركم احاسنكم اخلاقا خياركم بهترین شما کسی که بهترین اخلاق و رفتار رو داره بهترین شما خياركم خياركم بهترین شما اینا صفات انبیاس صفات صدیقین بهترین اخلاق رو دارن کن بهترین شما الله جل وعلا درباره رسول صص در میگه ولو كنت فضاً غليظ القلب فض من حولك اگر سنگدل بودی سخل بودی بد رفتار و بد اخلاق بودی مردم باید دستت فراری شدن رسول صص محبوب ماها شد محبوب صحابه شد به خاطر اون اخلاق نیکش بهترین شما پسندترین شما مورد پسند همه هست خوش برخورترین و خوش اخلاقترین و خوش رفتارترین شماست کسی را میپسندی پدر و مادر. بچه رو دوست دارن که خوش رفتار و خوش اخلاقه، اون بچه ای که خوش رفتار نیست خوش اخلاق نیست پدر مادرم دوستش نداره. غیر از دوست رفیق، غیر از همسایه و دوست رفیق. بس، انسان با خوش رفتاری با ادا کردن حق مخلوق، حق خالق را میتونه ادا بکنه. ولی اگر این حق رضایی کرد، حق خالق را هم نمیتونه ادا بکنه. من نمیاشکری ناسه، نمیاشکری الخالق. از پس خلق خدا بر نیامدی از پس خالقم بر نمیدی. الله از باب شکر سپاس درگاه خودش شکر سپاس مردم را گذاشته و اون اخلاق نیک رفتار درست قال المؤلف رحمه الله حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن الهاد عن عمرو المشعبي عن أبيه عن, عن جده رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة فسكت القوم فأعادها مرتين أو ثلاثا قال القوم نعم يا رسول الله قال أحسنكم خلقا دي ويسو ششومين حديث هذا حديث صحيح دم مفرد من بخاري رحمه الله فرمداش داش بسحاوي ويارال ربنا بكونا بيجي اخبركم بأحبكم إلي بيتم بيجي محبوب ترینه ناس من کیه و اقربکو منی مجلسن يوم القيامة کی نازیک تر به در اون مجلس روز قیامت در بهشت اعلی فردوس اعلی نزیک ترین شما به من در اون مجلس هم کیه در مجلسی که نشسته رسول الله صلی الله علیه و آله دیگه تو مجلس رشید بخاطر همین هم اینجا نشستی میخایم همجوارو همنشین رسول الله صلی در بحث علا بشید مخاطر همین وقتتون رو دادید که سخن رسول الله صلی الله بشنوید میدونید کی مستحق تر به این که همنشین رسول الله صلی بشه در روز قیامت میدونید کیه واسلا سنت خودش داره میگه یا رالح فسکت القوم همین الان گوش فرا دادن نشستن که بشد من کی لیاقت و این شرف رو خواهد داشت که هم نشین و همجوار رسول الله صلی الله علیه و باشه فعدا مرتين و ثلاثه دوبار بار سه بار تکرار میکنه میدونید قال القوم نعم یا رسول الله رسول الله بل يعني يخل رسول الله بقو كي رسول الله مشتقان بشدما قال احسنكم خلقا أن كسي كه خش رفتره كسي خش أخلاقه خش برخورده في درواته ديجا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحببكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسن لكم أخلاقا كسي كخش برخور ترين النازيك تري مجلس وما در روز قيامه دره وإن أبغضكم إليا وأبعدكم مني مجلسا مبغوسترین شما و دورترین شما از لحاظ مجلس به من در روز قیامت و این ابغادكم ایلیا و ابعدكم منی مجلسا يوم القيامه الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون الثرثارون ثرثار فرسخن فرحرف فرصخان فقط حرف میزنید تو مجلس نمیذاره کسی حرف بزنه رب داشته باشه رب نداشته باشه از هر چیزی حرف و سخم میگه سخن از هر چیزی در میاره رفتم میدان تر بار رفتم نمیدونم میدانه بار رفتم میدانه فلانی رفتم اینجا اومدم فلانی این کار رو کرد فلانی فرثاره از هر چیزی حرف میزنه بی ربط و ربدا فرثاره هست یعنی از تکرار چیزهای بی فایده چیزهایی که سود و منفعتی نداره هی داره تکرار میکنه بعضیا ها یاد گرفتن عادت کردن تو هر مجلسی نشستن از قوم قبیلی خودشون بگن ماها این توریه، ماها این توریه پدر بزرگم این بوده، من نسبم اینه این نسبم فلانیه خب یعنی اینگار به داره میگه شما نسب ندارید، شما می کسی شما ما هیچی نیستید فقط هر جلسه هم که چستا فقط ثرثاره، فقط میخواد حرف بزنه فقط با حرف میخواد خودشو بالا ببره با حرف میخواد بگه که ما بالاییم فقط با حرف فرفر. فرفر. ثرثار متشدق از تشدق کسی که دهنشو باز کرده با تحقیر مردم به سهزاب مردم با مسخره خودبیه و این سفات خصن در زننا زیاد پیش میاد یکی از خاصلت های روانی خود خودبینی و خودپنده در مردم غرور کبره اکتفاوت ظریفی با هم دیگه دارن این دو تا خلت در زنها بیشتر خودپندیه کسی را از خودش برتر و بهتر نمی‌دونه حتی اگر مادرش باشه. آبشون تو یک جوب با مادرش نمیره مادرش او روزایده. دختر با مادر اصلاً حرفشون یک جا نمی‌شینه. اصلاً این حرف خودش رو میزنه اون حرف خودش رو و شما شما دیده باشید. حالا دیگه چی برسه؟ اون دو تا خواهر باشن یا اون دو تا حوو باشن با مادرش حرفش تو یک جوب نمیره. دیگه چی برسه با بقیه؟ از کجا نشأت گرفت از خودپسندی؟ خودش رو بهتر دیده و به بی می‌بینه و این بر تمامی زنها مشترک الا ما رحم ربك الا استثناء باشه اینو باید ما ازش بر حذر باشیم ادب اخلاق باید یاد بگیریم نباید کسی رو تحقیر بکنیم نه به خاطر شکلش نه به خاطر قیافش نه خاطر من برای خودم تجربه شده طرف چون این زن خانم زن دومه نباید همسایه من بشه چون شاید شوهر من یاد بگیره. انواع آزار رو میکنه تا اینکه اون همسایه بلند بشه چرا چون اون زنه زنه دومه با رفتارش عملش میخواد اون طرف رو به زمین بزنه گاهی این رفتار با زبان گاهی رفتار با عمل کرداره الثرثارون والمتشدقون والمتفهقون قالوا قد علم نه الثرثارون والمتشدقون اونو های اشخاص پرحرف و خودخواه و خودبین و فهمیدیم فهم این متفیقهون که یه تصغیر شدن از باوران، اون کسانی که خودبینن از لحاظ فق و فهم و درگ از فق اومده دیگه متفیقه یعنی خودش را فهمیده می شموره. فهمیده می بینه قال المتکبرون نوعی که کبر و غرور دارن چون چه در حادث دیگه در بس کبر اومده غمت و الناس و صفه الحق در وقت غمس و الناس و بطر و الحق اونهای که مردم را تحقیر میکنن. و حق را نمی نمیپذیرن و حق را نمی پسندن قبول نمی کنن این متکبره هر چقدر حدیث و دلیل بهش بیاری باور قبول نمی کنه ازت ما همیشه در جلسات زنا یکی از بحث ها و جدال هایی که داریم شونه میذارن تو ابرو آلا رنگ بکنن آلا با قیچی نمی دونم کات بکنن آلا نمی دونم با اکسیژن نمی دونم رنگش بکنن دعوا دارن با خودشون با 4 تا م... تار موی که روی خب نست حدیثه لعن الله النامس و المتنمسه الله لعنت بکنه زنی که عبروش رو بردن الان دنبال یک حیریه یک مخرجیه که این خلق الهی رو عوض بکنه با بینیش مشکل داره با خبروش مشکل داره و خودش رو فهمیده میدونه تو نمیدونی تو نمیتونی درک بکنی و بنده خدا یک زنی شونه میزد رو بینیش من بینیم گنده هست خدا اینجوری تو رو آفریده به من مجوز میده که من برم و اصلاح بکنم درستش بکنم خب من چیکارم حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم نه شما نمیدونید فلان عالم اجازه داده خب فلان عالم اجازه داده من اجازه نمیدم خودش به خودش داره فتوا میده خودش داره به خودش فتوا میده می عوض میده حالا چرا تو داره مجوز میگیره سوال میگیره برای چیه نظرت شوهر رو میخواد متقاعد بکنه که بهش اجازه بده داره چونه باد میزنه ها اون شیخ فلانی هم اجازه داد چیچی چی سبب عدم پذیرش حق از تو شد متفعیقه هست فهمیده میبینه خودش رو دانا میبینه تو نمیتونی بفهمید نمیتونی درک بکنی نه خودش فقط میتونی بفهمه درک بکنه بس یکی از یکی از علامت های خوش خوشرفتاری درک کردن طرف مقابله اینه که درک بکنی این که اختلاف سلیقه را قبول بکنی اینکه خودبین نباشی اینکه خود پسند نباشی اینکه مغرور نباشی متکبر نباشی اینها تمام خوبی ها بدی ها که با مسال انسان میتونه بفهمه چون بعضی جا طرف هم میگه من این خوشرفتاری رو نمیدونم خوش ررفداری چیه؟ حالا بگو اف بخشش سب حیل برباری، خوشروی و آخر. حالا بد اخلاقی رو بگو اون چیزی که در تضاد با اون خوش رفتتایه حالا بیاد بگو دروغ غیبت، بههتان مسخره و ال آخر. جاهای این بدرفتاری که اینجا رسول الله صلی الله علیه و آله مساز دادن در گفتاره بددهنی بد سخن گفتن ناسزا گفتن نوشنام دادن بعضی جاها در رفتار اون بد در اون آزار اذیت حتی با اون خم ببرو کشیدن و اذیت کردن با دست با زور با پول جایی نام شیخ قال مؤلف رحمه الله حدثنا اسماعیل ابن ابی اویس قال حدثنی عبد العزیز ابن محمد عن محمد بن عجلان عن القعقاء ابن حكيم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق دیوی صحافت من حديث حدیث سر رضي الله عنه مغفر الله له لأمه کم یکیاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودا إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق إنما بعثت بدلوسی کم بوسیدن فرستاده از مصرفه الله جل وعلا تا اینکه اخلاق ها را کامل بکنم اخلاق نیک را کامل بکنم چرا کامل بکنه چون ناقص بود چون پراکنده بود هر پیامبری برای قومی فرستاده شده بود رسول الله صلی الله علیه و سلم فرستاده شده کل اون اخلاق های نیک را که تمامی پیامبران براش فرستاده شدن کاملش بکنه تمامش بکنه و تحویل امت بده اینجا رسول الله صلی اللہ علیه سلم فرمویدن مبعوث شدم برای کامل کردن و تمام به کمال رسوندن. چیزی به تمام رسید یعنی به کمال رسیده فرستاده شدم که اون اخلاقها رو به کمالش برسونم یعنی بهترین اخلاقها رو به شما بازگو بکنم بهترین اخلاق. اون چیزی که صالحه صالح الاخلاق صالح نیکه درسته در این دنیا صالحه به اعتبار نتیجهش صالحه به درد بخوره به درد این میخوره که روز قیامت بیاد در ترازو اعمالت سنگینی بکنه اعمال نیکت صالحه اون چیزی که به مصلحت دین و دنیات باشه صالح اخلاق نه اینکه فقط تنها رسول الله صلی اللہ علیه و سلم بیاد اون اخلاق نیکی که فقط به درد این دنیات بخوره بعد بده نه اون چیزی که به درد دین و دنیات بخوره خصوصا مصلحتت دینی رو در بر میگیره صالح بودن دینی مهمه دین من چی میگه چی درسته نه اینکه ما فقط یک زاویه نگاه بکنیم و یک طرف قضیه نگاه بکنیم و اونم تعامل دنیوی تعامل حسی فقط اخلاق را صالحی بودن اخلاق را فقط در تعامل ببینیم نه ما اول باید بدونیم اون حسن اخلاق رو برخورد و اون تعامل نیک یک جنبش با مردمه جنبه دیگرش با الله جل و علاس. زنی خوشرفتاره خوشبرخورده الله رحمت در قلبش گذاشته ولی اهل گناه و مثل اون زن فاحشهی که الله با اون یک رحمی که در قلبش بود الله را بخشید تعامل با الله با اعمالت وز میده زنی اهل و عبادته ولی گربه را حفظ میکنه گربه میمیره نسلا سس نبی جه اهل جهنم تعامل با خلق نداره یک گربه ای را ظلم میکنه هر دو تا نکو مهمه تعامل با خلق و تعامل با خالق در تعامل با خلق اوتایی کردی زنه اهل تهجد جهنمی میشه با یک گربه تعامل با خلق و خالقه در حق خودش ظلم کرده ولی در حق یک حیونی احسان میکنه و در حق خالقش سعی میکنه که خوب باشه الله وزن میده به همون عمل ناچیزش به خاطر اون ایمانش و چشم پوشی میکنه از اون اعمال بدش هر دوتا تا مهمن. نه اینکه ما فکر بکنیم فقط بچسبیم به ظاهر و تعامل دنیاوی با خلق خدا و خالق رو بکنیم نه هم رفتارمون با خالقمون درست بکنیم هم با مخلوقات الله جل علا از جای رسول الله صلی الله علیه و سلم هم همین بوده خصوصا ما در دعای صبح و شامگاه داریم اللهم نسالك العفه والعافيه في ديني ودنياي صن بدین و دنیاش توجه داشته باشه. ب دین و دنیاش. الله ان شاء الله به وقت خواهیم قال المؤلف رحمه الله حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا إلا اختار أي ما لم يكن اسمه فإذا كان اسمًا كان أبعد الناس منه ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله عز وجل بها دميستو هاشتمين حديثة وحديثة صحيحة أدب مفرد إمام بخاري رحمه الله وأسكن في جناته حديثة من المؤمنين عاشي رضي الله عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار إيسرهما ما لم يكن إثما فإذا كان اثما كان أبعد الناس كان ابعد الناس ما دو الله حق اختيار داده نمیشه در مقابل دوتا گزینه این اختیار از الله باشیار یا مشرکی یا منافقی یعنی الله جل وعلا به رسول الله حق اختیار رو کدوم یکی از این دوتا رو گزینش بکنی رسول الله اون خودم یکی رو انتخاب می‌کرد اون عملی که آسون تر بود سختتر انتخاب انتخاب آسون تر رو انتخاب می‌کرد مادامی که الله جل و علا بهش حق انتخاب رو داده یک وجهش اینه وجه دیگرش اینه که اینه در اون صلحشون در یا اون در تعاملشون پیشنهادی میدن دو تا گزینه رو میدن، رسول الله صلی الله علیه و سلم در اون گزینه ها آسون ترین رو انتخاب میکرد نه سخت‌ترین این یک تفسیر دیگری که علما اینجا بهش اشاره کرده. بس رسول الله صلی الله علیه و سلم در انتخابش گزینشش آسان‌ترین را انتخاب میکرد با یک قیدی. مادامی که گناه نباشه. ما لم یکن اثما در صورت گناه نباشه. معصیت نباشه. فإذا كان اثما كان ابعد الناس من اگر گناه بود اون عمل رسول الله صلی الله علیه و سلام دورترین افراد از اون گناه بود. تا اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلام اون چیزی که مهمه در این حدیث قسمت آخرش از گفته عمومی عائشه و ما انتقم رسول الله صلی الله علیه و لنفسه هیچ وقت بخاطر نفس خودش از کسی انتقام نمی گرفت چون بدگویی کرده ناسزاش گفته باید انتقام خودش رو بگیره دیدید جایی انسان این غرور درش پیش میاد مثلا حرفی رو از قهرش از برادرش میشنوه میخواد دلشو رو کنه به من گفت من نشونش میدم فقط میخواد نشونش بده انتقام بگیره یا میخواد کتکش زده دلش خنک نمیشه تا انتقام بگیره ماشینش یا مطرش رو پنچر بکنه یا آتش بده معلم نمرش نداده باید آینه ماشین معلمش رو خرد کنه انتقامه رسول الله صلی الله علیه و آله و این بود از اخلاق و رفتارش گذشت میکرد انتقام نمیگرفت این نمونه اساس اون اخلاق و رفتار که باید یاد بگیریم انتقام گرفتن خیلی راحته انتقام گرفتن خیلی راحته یعنی میشه راحت خونه کسی رو داد ماشین کسی را سوزون ولی بخشش سخته دست رو دلت بزاری کسی سیری زدن زیری گوشت بات تو گوزش بکنی میشه بلی میشه ولی بل خیلی سخته. در سهی مسلم داریم که امونی عویشه در حدیث دیگر میفرمایان ما ضرب ولا ولا رسول الله سلام شیئا قط بیده ولا امراتا ولا خادما رسول الله سلام نزنی نخدمت گذاری هیچ کسی رو دستش شکتاک نزده الا ان یجاهده فی سبیلله مگر کدار جانگ جواد باش و ما نیل منه شیئن قط فینتقم من صاحبه الا ينتهك شيء محارم الله فينتقم لله عز وجل بر خودش هیچ انتقام نمیگیره هر چقدر آزار اوذار ازیتش میدادن انتقام نمیگیره مگر اینکه حرامی از های الهی شخص انجام بده و حد و حدودی روش اجرا بکنه مثل زناکار سنگ مثلا زناکار سنگسار بشه واسه یا مشرک معاندت داره میجنگه با مسلمان ها رسول الله صلی الله علیه و سلم بیاد با شمشیرش به جنگ اونها اما در تعاملش با دیگران به نسبت خودش عفت میکرد حلیم بود صبور بود و خلاصه اون چیزی که از این حدیث خوندیم از گفتار و سخنان رسول الله صلی علیه و علیه وسلم و تعاملش اینه که در دین ما جایگاه اخلاق خیلی والاست این دینی که خیلی ها ناپسندش میشمورن به عنوان یک تن و افرادگری نگاش میکنن دین اسلام ما ام ملحدین اون دی سیتیزان ازش به بدی یاد میکنن اون دین ما اون دینی نیست که اونها واسش میکنن بلکه دین ما دین رفتار دین رفتار پسندیده دین خوش رفتاری دین خوشرویی دین خوش تعاملی دین ما دینی است که خرسندی میاره دینی است که اون شخصی که الگوی ما محمد مصطفی صلی الله علیه و سلام کسی که عفو می کرده کسی که در توصیه به اصحابش میگه کسی اگر بچه شروع بوسه رحم در قلبش نیست اون کسی هست که حتی در تعامل به حیوان میگه حیوان رو کتک نزنید دست نه روی همسرش بلند کرده نه دست روی خادمش نه روی بچه‌ای کسی کسی را با کتک زدن ظلمی نکرده نه کرده حتی از کتک زدن حیوان حتی از چاقو تیز کردن جلوی حیوان رحمش حتی نسبت به اون حیوان بوده حیوان رو کسی دوبار بار نکنه آزردش نکنه حتی حیوان این رسول ما هست این پیغمبر ما هست که مهربان بود که با شفقت بود که با عطوفت بود و الله هم دوست داره که مؤمنین هم همچون او اهل بخشش اهل صبر و بردباری اهل کرم و سخاوتمندی این صفات نیک در اونها باشه سبحانك الله وبحمدك سبحان الله وبحمده و صلی الله علی محمد و محمد